بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازه نهایت نهایت باره قسم به با آسمان و آنچه در شب پدیدار می شود و چی چیز تو را آگاه ساخت که پدیدار شوینده در شب چیست؟ ستاره درخشان کسی نیست که بر او نگهبانی نباشد باید انسان فکر کند که از چی آفریده شده است از قطر آبی جهنده یا شده است که از میانی تیر پشت و رستخانه های سینه بیرون می آید یقینا که او جله و علاشانه و رو بربازگرداندن و ایتوانه توانست یعنی قدرت دارد انسان را بعد از مرگ او زنده کند روزی که اسرار برملا می شود پس او نیروی و ندارد تا از خود اندفع کند قسم به آسمان دارای باران و قسم به زمین دارای شگاف که روینده آن را می و از آن سر برمی آورند بگمان این کلام است قاتل میان یعنی حق و باطل و این شوخی نیست واقعا آنها به گونه دسیسه می چینند. من نیز در برابر دسیسه ایشان ترحه میریزم یعنی جزای مکرشان را می دهیم پس کافران را مهلت بدی ایشان را دکی مهلت بدی